بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام و سلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین و علی اجمعین اما بعد ما قبل از رمضان در سای داشتیم در سیرت مصطفی صلی الله علیه و سلم و مدت ده دقیقه تا روح ساعت والا باز بار دیگر تصمیم داریم که اون مسیلی که شروع کردیم ادامه بدیم از سیرت مصطفی صلی الله علیه و سلم الله فیلم سعی می کنیم که ان این چنین شبیه شب مثلش فردا شب ده دقیقه یا حالا خیلی بیشتر از اون را بخوام مطالب رو باز بکنیم تا رفسه قدکارش ولی تا ده دقیقه سعی می‌کنیم مطالب رو خلاصا بکنیم از اون چیزی که درباره سیرت مصطفا صلی الله علیه و سلم امده ما مطالب زیادی داشتیم درباره دا سیرت مصطفا صلی الله علیه و سلم از قبل از ولادتش و بعد از ولادتش. مطالب بود در اونالا احادیث صحیح و تذکراتی هم در باری احادیث که اومده بود یکی از مسائلی که ما قبلا بهش اشاره کردیم بحث شق صدر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که دینی رسول الله صلی الله علیه و سلم دوتا از فرشتگان اومدن شکافتن و قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم راش رستن. ما گفتیم که دوباره این واقعه تکرار خواهد شد این واقعه بار دیگر در اترا و معراج حاصل شده همین شخص صدره یا باز شدن سینه رسول الله صلی الله علیه و سلم ما مطلبی که روش متوقف شدیم مطلب اسراء و معراج بود که اسراء و معراج بود که انشاءالله میخوامیم شب مطالبی پیرامون اسراء و معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم بیدیم خیلی از مسائل بود که ما بهش اشاره کردیم از جمله مسائلی که ما بهش اشاره کردیم بحث شکنج دادن مشرکین به صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و مسخره کردن و خیلی از مطالب و بعضی ها ما تذکر دادیم و گفتیم که از لحاظ اسنادی صحت نداره مثل مثلا اون چیزی که مشهور هست و در کتاب‌ها نوشته و در مدارس ما خونده این این که مشرکین اومدن به رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا گفتن که یک سال تو بتای ما رو بپرست و یک سال ما بتای ما خدای تو رو بعد در جواب آنها اون چیزی که حالا گفته شده که رسول الله صلی الله علیه و گفتن که اگر ما را در کف راستم و خشیده را در، آخر این روایتی که معروف هست و همه حید بیاد باز کردن این مسائل نیست این روایات صحتی نداره از لحاظ علم حدیثی چون علم حدیثی در یکری برای خودش داره ما در علمای اهل سنت اون چیزی که ما بهش اعتقاد داریم اینه که دین ما باید بر اساس پایه مشکمی باشه ما تا وقتی یه چیزی محکم نداره مشکمی نداشته باشیم استنادی نداشته باشیم نمیتونیم بهش متکی باشیم قل هانت برهانکم ان کنتم صادقین و ادله تون بیارید ادله اون چیزی هست که سند داره برای خودش به خاطر همینی که خداوند در قرآن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم هذه سبیلی ادعو الی الله علی ضفیره انا و من ای محمد بگو این راه من راه و سوی بهش راهی روی بسیرت بینش راهی روی عدله و براهین عدله اقلی و عدله نقلی انا و من التبعانی من و پیروان من دعوت من به سوی الله و سوی بهش داره روی بسیرته روی بینش و روی, روی عدله و موانی صحیح. همچنین از جمله رواتهایی که ما هم بهش تذکر دادیم بحث این بود که مشدیکین اومدن مثلا گفتن که ما به طول میدیم و فلان میدیم و یا جاها منصب بیت میگیم اینم بازم مشهور در در بین خودمون لیکن گفتم بازم میگم اسنادی نیست برای این روایت ها اگرم باشه خیلی ضعیفه شاید وقوع شده باشه یعنی شاید واقع شده باشه این مسئله لیکن اسنادی نیست یعنی کسی مدتعلا نیومده این واقعه را نقل بکنه مثلا بلفر. من میگم در خیاب انصر چهارراه مرکز تادوق شده ساعت 8 من اونجا ساعت هشت نبودم خب آیا همینجوری خبر دادن باید شما از من باور بکنید مجرد خبر من سر چهار راه شده شما من اینجا من از مثلا فرض مغلب من اینجا دیدید نباید از من بفرد دیدید. چه موقع؟ از کی شنیدی؟ کی این واقعه رو دیده بله فلان شخص من گفته در اونجا با چشم خودش که فلان حادثه رخ داده در سنت متحرم چی تا وقتی که نباشه. ان شخصی که دیده این واقعه و شنیده از صحابه رسول الله صلی الله علیه و تلام متأسفانه به ما نقد نشده باشه ما نمیتونیم قبول بکنیم. گفتم شاید واقع اون واقعه رخ داده باشه لیکن دلیل بر نیست بحث اسراء و معراج رسول الله صلی الله علیه و تلام اون چیزی که اعتقاد ما اهل سنت بر اون هست اینه که رسول الله صلی الله علیه و تلام با روح و جسد خودشون به بیت المقدس بعد به آسمون ها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فآخر آياتك در سورية إسرى ومدر أسرى بعبده أسرى إسرى از رفتان در شب مياته رفتان در شب سفر در شب إسرى در لغة عربي أسرى بعبده قدران فقمنا الزهد که با قدرت لا انتهاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بلان میکنه از مسجد الحرام به مسجد اقصا که اونجا به پیانبران به تمامی پیانبران خداوند نماز بخونه حالا در رقایت ها آمده کل پیامبرانی که خداوند برای امتاها فرستاده هزار پیامبره و رسول الله صلی الله علیه و از اوصاف اون پیامبرانی که دیدن بهمون نقل کرده از اون اوصافی که داشتن از عیسی سلام، السلام از دیگر پیانبرانی که چه شکل و چه قیافه‌ای داشتن میرن در اونجا و به تمامی پیامبران نماز میخونن چرا همون اگر در نماز اولیای بهش توجه کرده باشیم خداوند چنین میبیاد ان اکرمکم عند الله اتقاكم مکرمترین شماها نزد الله با تقوا و کسی با تقوا از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست در بین خلایق با تقوا مکرمترین خیر البشر سید البشر هیچ کسی اوصاف رسول الله صلی الله علیه و سلام نداره هیچ یک از پیامبران هیچ اوصاف ندارند ما هم گفتیم از معجزات را بخواهیم گفت چه معجزاتی رسول الله صلی الله علیه و سلام داشتند اینم یکی از معجزاتی که هیچ یک از انبیای ما قبل نداشتن ما خیلی از معجزات داریم که پیامبران پیشین داشتند برای رسول الله هم مثل آن بلکه برتر از آن داشتند ما یک از مباحثی که قبلا بهش اشاره کردیم مطلب آخری که بهش خاطر دادیم بحث مشعل القمر بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره به ماه میکنن و ماه د میشه موسی علیه السلام اشاره به دریا میکنه دریا می میشه کدوم یک بزرگتره که به با عصا به دریا داده بشه جلوه انسان دریایی شکافته بشه یا اینکه ماهی که خدا میدونه چقدر بزرگه در آسمان نث بشه یک طرفش این بر یک طرفش آن اونور کدوم یک بزرگتره ما معجزات بسیاری داشتیم از خدا رسول الله که معجز خیلی بزرگتر از معجزات امتای پیامبران امتای, امتای, امتای, امتای پیشینه و اذ تست موسی لقومی فقل له ضرب الحجر فف منه می مت اش عیننا كل اونا که مشربه وقتی موصعد اومتش بنی اسرائی درخوااصه آب کردن گفتیم که سایت را بزن به دیوار بزن به اون سنگ به صخره زد به صخره آب بیرون اومد آب شکافت یا آب آب اومد از وسط اون صخره. اگر این شین معجز ای را ممسعد السلام داشتن ما بزرگتر از این از رس الله عليه وسلم داریم. کدام یک بزرگتره؟ بیرون آمدن آب از سخره یا اینکه کف دست رسول الله صلی الله علیه و در کاسه باشه رود جاری میشه چشمه جاری میشه صحابه میبین ما بیش از ده هزار نفر بودیم در جنگ تبوک رسول الله دستشو در کاسه دست دستشو در کاسه گذاشتن دیدیم که از بین گوشت و پوست رسول الله صلی الله علیه و سلم چشمه جاری میشه آب جاری میشه این بنده مختار خداونده این مصطفیه این محمد صلی الله علیه و سلم، این اکرام خداست شکر و سپاس بگیم که خدا ما توفیقمون داد مصطفی باشیم محمدی باشیم تابع مصطفی باشیم بیام سر سجود بذاریم در این مسجد به الله جل شانه بله خدا بود نور بود اومد که ما را از تاریکی ها نجات بده این معجزات را ما داریم میگیم این اوصاف را ما داریم میگیم تا قدر این دین و دیناتمون بدونیم بدونیم که امه مختاریم کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر كنتم خير امه بهترین امتا هستید ما بهترین امتا هستیم چون بهترین پیامبران رو داریم اگر قرار باشه که ما بهترین امت باشیم و بهترین پیانبران داشته باشیم چرا پس از پیامبر صحبت نکنیم چرا به سیرتش نپرداز چرا از وقت خودمون ندیم به سیرت این مصطفی صلی الله علیه و سلام چرا کتابا در بارش مطالعه نکنیم ما الان گفتیم ده دقیقه الان صحبتمون تموم شد. چند دقیقه در روز داریم؟ 24 ساعت در 60 دقیقه بگوییم هزار و دقیقه در روز داریم. ده دقیقه وقت انسان میگیره ولی خیلی آشنا از خیلی آشناه بر نفسشان سنگینه بکنه. همین ده دقیقه دادم برای دی. ارزش بعدا ما رو بدونیم قدر عذر بی رو بدونیم بدونیم که ما بهترین امت هستیم که خداوند ما را انتخاب کرده. ان شاء الله تا فردا شب و ادامه بحث اسرار مرگ. سبحان الله بحمد کنم. سبحان السلام و الله محمد و علی محمد.